به خانه برگشتم و روی سانری فتیله گذاری کردم. شاید التیام یافتن درد پایم هنگام رفتن به آن او تصادفی بود. آقای ماسارو و آقای متسوع دو عضو تیم نجات مستقر در اقامتگاه شهرک اوناگا هم به عنوان تلسمی برای جلوگیری از سرایت بیماری زخمی ها خود را فتیله گذاری کرده بودند. قسمت های گذاری را احتمالاً کسی از حکیمی ماهر فرا گرفته و بعد هم، همه همین را تقلید کرده بودند. تعداد بیماران اتمی پذیرش شده در مدرسه اونورا از ساعت پنج بعد از ظهر روز ششم اوت تا بیست و یکمه ماه سپتامبر یعنی طی حدود چهل و هفت روز هزار و دویست و چهل نفر بود. مدرسه شانزده کلاس داشت. هر کلاس 20 متر مربع و در مجموع 320 متر مربع. چهار پزشک عادی و هفت پزشک ارتشی کار معالجه و را انجام میدادند پرستاران هر روز 25 نفر و خدمتکاران هفتاد نفر بودند. هر روز چهار بار عوض می شدند. پس حد اکثر دویست و هشتاد نفر در طول شبان روز و در تمام این مدت نه هزار و هشتاد نفر بودند. جنازه هایی که برای تطفین سوزانده شدند دویست و پنجاه جنازه بود. بقایای استخواان هایی که تحویل گیرنده مشخصی نداشت به هیروشیما فرستاده شده بود. اینها را شهرداری آن او را ثبت کرده بود. آن زمان در مدارس شهرها و روستاهای اطراف هیروشیما مصیبت زدگان پذیرش می شدند. اینکه شهرداری هر شهر و روستا در حال حاضر آن یادداشت ها را داشته است یا نه معلوم نیست. هزاران مصیبت زده به مدرسه هساکا فرستاده شدند. همه آنها را نتوانستن پذیرش کنند. پس علاوه بر مدرسه خانه های کشاورزان هم به عنوان پذیرشگاه مورد استفاده قرار گرفت. یادداشت اضافه شده. آنچه در زیر میآید هم یادداشت است که بعدا اضافه شده. منظور از این یادداشت این است که درباره گروه نجات ویژه که از روستای تا که بسیج شده بود، آنچه را اشتباه شنیده بودم دوباره تصیح کنم. روح نجات از دو دسته اعضای آتش نشانی یعنی شانزده نفر به دستور پلیس و دسته کارکنان بهداشت یعنی 12 نفر بهداشت کار شهر گرفت که به دستور فرمانداری بسیج شدند این اواخر این مسئله را فهمیدم روز ماه اوت بمب در هیروشیما شب همان روز اعضای آتش نشانی روستای کاباتا که به دستور رئیسشان حدود ساعت ده در محل دهداری جمع شدند دهدار چیزی به این مفهوم گفت از اینکه در این موقع شب و با این عجل شما را فراخواندیم عذرخواهی می کنم. امشب به دستور پلیس شما را جمع کردیم در واقع امروز ساعت هشت صبح هیروشیما بمباران شده و خسارات بسیار زیادی به بار آمده در جزئیات آن بیش از این نمیدانیم، اما شما همراه آتش نشانانی از شهرها و روستاهای دیگر منطقه جینسکی به سمت هیراشیما آزم خواهید شد. به عبارتی تحت امر فرماندهان در کارهای خدماتی به کار گمارده خواهید شد. به اندازه کافی نسبت به ریختن خانه ها دقت کنید که همزمان با کار امداد با حوادث غیر منتظره روبرو نشوید. تقاضا می کنم برای کمک به همشهری هایتان در واحد نظامی کجین نهایت تلاشتان را بکنید. تداوم بختی خوب را در جنگ برایتان آرزو می کنم. در ادامه نوبت به مععزه رئیس آتش نشانی رسید. خانه رئیس از محل دهداری دور بود و چون هنگام اعلام خاموشی باید از روشن کردن چراغ خودداری کرد نتوانستند با او تماس بگیرند. به جای او معاونش کانشیگه پشت جایگاه قرار گرفت و برای وداع گفت اعظام این بار ما گروه آتش نشان در عین حال که ظاهرا برای بررسی فرو ریختن خانه هاست کاری جز مسئولیت خطیر نجات اعضای واحد نظامی کجین نخواهد بود یعنی روز نجات همشهری هایمان در واحد نظامی کجین فرا رسیده است روزی که تا الان برای آن آماده می شدیم میخواهم در این روز به گونه ای کار امداد و نجات را انجام دهید که روستا از دفاعی دو چندان مطمئن شود. نجات دهید، نجات دهید و برکردید. اکنون جزئیات را به خوبی نمیدانم اما میخواهم با رفتن به هیروشیما به شکل شاگسته عمل کنید. لباس اعضای گروه لباس نشانی همراه جورابی با کف لاستیکی بود. وسایل همراه آنها اره تناب، چنگک دست بلند، روسری ضد زد زده حملات هوایی، اورکوت برای خواب و غیره بود وسیلهی که بر آن سوار شدند زغال زغالسوز بود پس برای سوخت آن باید سریع چوب خورد می کردند. برای همیاری در این کار یا برای بدرقه هم همه عظیمی بپاشد چراغهای کامیون را به گونه استطار کردند که بیش از سه تا چهار متر جلوی آن دیده نشود بنابر این افرادی که بدرقه می کردند با افرادی که بدرقه می‌شدند همدیگر را نمی شناختند. دستهایی که از بالای کامیون و دستهایی که از پایین دراز شدند به کمک صدا همدیگر را می گرفتند. این گونه شوهران و همسران از هم خداحافظی کردند. کامیون اول به دهداری روستای تاکافوتا رسید از سوی داوطلبان آنجا با آرد گندم ماهی شکر و غیره پذیرایی شدند رئیس انجمنی نظامی متولد آنجا برایشان جملاتی تشجیع آمیز بیان کرد. همراه آتش نشانان این روستا از تکافوتا برگشتند. بعد با آتش نشانان روستای تویاماتسو، شهر یوکی، روستای فکونگا و چهار روستا و شهرک دیگر در هم ادغام شدند و سپیددم بود که به شهرک جوگه رسیدند. با اولین قطار صبح از آنجا آزم شدند و ساعت ده صبح به شهرک یاگا، در حومه هیروشیما رسیدند. پیاده به شهر وارد و به نجات افراد زنده و سوزاندن نعش‌ها مشغول شدند. در دشت سوخته وسیع، اره و تناب دیگر کاربردی نداشت. چرا که از این وسایل در فروریختن ریختن خانه‌ها استفاده می‌شد. از آوارها، کتری و بطری های خالی را جمع، پر از آب و بین بمباران شدگانی توضیح می می‌کردند که تشنه بودند. دهان هایی را باز می‌کردند و آب در آنها می ریختند زخمی هایی که زخمی کاری داشتند و تلو تلو خوران راه می رفتند یا بر زمین نشسته بودند اما این اینگار هرقدر آب در گلویشان می ریختند. معدهشان پر نمی شود. آنها گرفتار این قبیل کارها یا سوزاندن جسدها بودند اما کار نجات کسانی که زنده مانده بودند چندان خوب پیش نمی رفت. از بیست و یک نفر اعضای واحد نظامی کجین از روستای ک با اینکه چند نفر را نجات دادند، با احتساب آنها که در دم جان باختند، نوزده نفر در محل مردند. از طرف دیگر، شب ششم ماه اوت، تلگرافی برای رئیس مرکز بهداشت کباتاک ارسال شد که در آن قید شده بود. خسارات زیاد، زود بیایید. دکتر ساتاکه، رئیس مرکز بهداشت که آزم شد، دکتر ساتاکه بعد از دو شب و سه روز اقامت در هیروشیما برگشت اما بعد از جنگ مرد. با تلفن به آقای کانو رئیس بخش معالجات دستور داد همراه بهداشتکاران منطقه جینسکی خیلی زود برای امداد و نجات به هیروشیما بیایند. آقای کانو همراه دوازده نفر از بهداشتکاران منطقه روز دهم ده ماه اوت پیاده آزم هیروشیما شدند. آنها به خاطر خسارات سیل نتوانستند در ایستگاه جوگه سوار قطار شوند. بنابراین پیاده تا شهرک میوشی رفتند و یک شب آنجا کردند. صبح روز بعد با قطار تا شهرک یاگا رفتند داخل هیروشیما شدند و به مقر اصلی گروه نجات واقع در بقایای مرکز پلیس شرق رسیدند مقر اصلی گروه نجات به گوشه ای از انباری آجوری داخل شعبه تأمین غذای نیروی زمینی ارتش انتقال یافت بهداشتکاران عمدتا به درمان زخمیها پرداختند رئیس این مغر، مسئول بخش بهداشت فرمانداری با نام کی تا بود که به سبب زخم ناشی از پیکادون صورتش را با پارچه سگوش بسته بود. آقای کانو به عنوان مدیر دفتر انتخاب شد. بیماران هجوم آوردند اما روش معالجه بیمارانی را که تب می کردند دا و اصحال داشتند نه رئیس مغر و نه پزشکان دیگر نمی دانستند. فقط داروهای تقویتی میدادند و می گفتند مشکلی نیست. بهداشت کاران همراه آقای کانو هم آن ویتامین و گلوکوزی را استفاده می کردند که با خود آورده بودند. ده روز که گذشت، به دستور مقامات بالا بهداشتکارانی جایگزین این افراد شدند که از منطقه یوسو با دارو آمده بودند. آقای کانو هم به روستا برگشت. بین بهداشتکارانی که به زادگاه برگشتند، کسانی بودند که مانند بیماران بمبه اتمی از گرفتند و کمی از موهای سرشان کنده شد. راه درمانی هم اگر بود دارو وجود نداشت از اینکه نمیدانستند چه بیماری است وحشت زده شده و سرانجام با گذاری خود را آرام کرده بودند برای اینکه های سفید خونشان هم کم نشود مقدور از تابش نور خورشید اجتناب و مدام گوجه فرنگی مصرف می کردند. برگ گیاه صبر زرد را هم که در گلدان رشد میکرد می‌خوردند چنگ زدن به هر خاشاک را من هم تجربه کردم. متفاوت با بهداشتکاران، اعضای گروه نجات در آوار سوخته میگشتند. از بیست و یک نفر اهالی روستای تکافوتا، یک نفر در محل مرد، و یازده نفر از آنها هم که برگشتن، بر اثر بیماری بمب اتمی مردند. این وضعیت کسانی بود که میان آوار راه می رفتند. در روستای کرومی، از شانزده نفر پانزده نفر مردند و یکی زنده ماند. در روستای سنیو همه مردند. دیگر ضرورتی نمی نمیبینم تا درباره ترسناک بودن بمب اتم دهانم را بسته نگه دارم. فتیله‌گذاری بهداشت کاران را بدون دروغ و به همان شکل واقعی ثبت کردم. میزان مرگ و افرادی را هم که در آوار سوخته بودند بر اساس آمار شهر دادم. با آنکه تحقیقات در مورد ازدواج یاسوکو دختر برادر زنم سریع پیش میرفت، اما دیروز به شکل غیرمنتظره از سوی آانو یعنی خاستگارش رد شد. علاوه بر آن نشانه های بیماری اتمی در یاسوکو هم شروع به ظاهر شدن کرد. همش همین بود. به اینجا رسیدن کارها پنهانکاری نبود و لازم هم نبود که مخفی کاری شود. ظاهراً خود یاسوکو هم شروع ظاهر شدن بیماری اتمیش را در نامهی با لحنی گریان به خاستگارش اطلاع داده است. شاید تصمیم داشت برای احساسات عاشقانه به خاستگارش اعتراف کند شاید هم از روی هیجانات ناشی از ناامیدی این کار را انجام داد قوه بینایی یاسوکو به تدریج ضعیف شد گوشش بی شروع به سود کشیدن کرد لحظه ای که این مسئله در اتاق نشیمن به من گفته شد یک آن اتاق نشیمن و آنچه در آن بود محو و ابر عروس دریایی بزرگی در آسمان آبی پدیدار شد به وضوح این را دیدم یاد داشته اضافه شده